به نام خدای یگانی مهربان سلام افسانه‌ها از زندگی مردم مایه گرفتن و ریشه در اون دارن افسانه‌ها در واقع تبلور رنج و ستم آزمون و تجربه و آرزوها و آرمانهای مردم یعنی که خالق اصلی این قصه ها و افسانه ها هستند در این مجال شبانه افسانهای رو از سرزمین روسیه براتون نقل میکنم به نام افسانه سادکو برگرفته از کتاب های مردم روسیه اثر آرتور رنسوم با ترجمه ای از زهره گرامی امین در روزگاران قدیم در سرزمین روسیه پسر جوونی به نام سادکو زندگی میکرد که خیلی فقیر بود و از مال دنیا چیزی نداشت سادکو توی جشنها سنتور میزد و مردم پولی به اون میدادن سادکوی ای ما جوان زیبایی بود اما چون پولی نداشت هیچ دختری حاضر نمیشد با اون ازدواج کنه اونا حتی نگاش هم نمیکردن اگر روزی هم با سادکو حرف میزدن فقط برای این بود که به اون بگن به نواختنش ادامه بده یا ب بنواسه سادکو یه روزایی که احساس تننایم کرد و دلش میگرفت به حاشیه روتون ولخوف میرفت و قدم میزد و برای خودش موسیقی مینواخت اون می آه خدای من در تمام سرزمین روسیه دختری به زیبای رودخون ولخوف وجود نداره سادکو گاهی به ماهیگیران دریاچه کمک میکرد اونا هم در عوض به خاطر بازوهای قویش ماهی کوچیکی رو برای شامش به اون میدادند یه شبی ماهیگیران از سادکو خواستند که وقتی اونا ماهیهای خودشون رو برای فروش به بازار شهر میبرن اون در ساحل مراقب تورهاشون باشه سادکو در ساحل روی سخره اینشه سنتور زد و آواز خوند اون با صدایی دلنشین شعری درباره باری زیبا و دوست داشتنی خودش یعنی روتخونگ ولخوف میخوند روتخونی که از همه دختران سرزمین روسیه زیباتر بود سادکو همونطور که آواز میخوند یه دفعه در دریاچه گردا میدید روی آب امواج کوچیک پرواز می و در وسط آب گودال و شکافی ایجاد شده بود در اون فرو رفتگی چهره بزرگ مردی با موهای آبی و تاج تلایی رو دید سادکو با هیجان فریاد زد آه خدای من فرمان روای دریاها فرمان روای دریاها مرد از اعماغ دریاچه بیرون اومده بود و داشته به سک و نستیک و نیک با دیدن فرمون روای دریاها، در چند قدمی اون بود نمیدونست چیکار کنه فرمون روای دریاها با صدایی بلند گفت سادکو روزهای زیادیه که در کنار این دریاچه ساز میزنی و آواز میخونی من و دخترانم موسیقی تو رو دوست داریم دریا پاداش آوازهای زیبای تو رو میده الان طورت رو به آب انداز و پاداشت رو بگیر صدکو با خوشحالی گفت، آه آه، پاداش، متشکرم متشکرم فرمان روای دریاها گفت، اگه از پاداش خودت راضی بودی، باید به قصر سبز دریا بیایی و برای من و دخترانم آواز بخونی و بنوازی، فرمان روای دریاها باردیه به اعماغ آب دریاچه فرو رفت، و باج با صدای مهیب روی اونو پوشوند و دریاچه مثل همیشه آروم شد. سادکو با خودش گفت آه نکنه این فقط یه خیاله اما تور اندختن که زرر نداره. بعد تور رو توی دریاچه انداخت و در انتظار موند. سنتور زد و آواز خوند. بعد آروم تور رو بیرون آورد. نیمی از تور بیرون کشیده شد. ولی خبری از پاداش نبود. سادکو با خودش گفت همش خواب و خیال بود. فرمان روای دریا رو خواب دیدم. چیزی توی تور نیست. خیالاتی شدم. اما درست وقتی که آخرین قسمت تور رو از آب بیرون کشید جعبهی در اون به چشمش کرد. با خوشحالی و بتندی جعبه رو برداشت و درش رو باز کرد. به پر از سنگ قیمتی سبز و قرمز و طلایی بود که زیر نور مطاب می درخت. سادکو افسانه ما جعب رو و شونش گذاشت اما با اینکه قوی بود، زیر بار سنگینون خم شد بعد رو در محلی امن پنهون کرد و تمام شب از تورهای ماهیگیران مراقبت کرد سنتور زد و آواز خوند ماهیگیرا بعد از اینکه شب رو در شهر گذروندند صبح برگشتند و به خاطر مراقبت از تورهاشون ماهی کوچیکی به سدکو پاداش دادن سدکو با خودش گفت آه خدای من این آخرین غذای من به عنوان یه مرد فقیره چه کسی میدونست که بالاخره منم خوشبخت میشم خلاصه سادکوی سنتور زن افسانه ما احساس خوشبختی میکرد فردای اون روز به شهر رفت و دوتا سنگهای قیمتی رو فروخت و با پول اون در شهر مغازه خرید کم کم تو کارش پیشرفت کرد و به زودی یکی از ثروتمندترین بازرگانان روسیه شد دیگه حتی یه دختر هم در سرزمین روسی نبود که دلش نخواد با سادکو ازدواج کنه. اما این ثروت سادکو رو عوض نکرد. اون هنوز هم کنار روتونه ولخوف قدم میزد و سنتور می و باز هم می گفت در تمام سرزمین روسی دختری به زیبایی روتونه ولخوف کوچه که من پیدا نمیشه سادکو مثل تاجرهای بزرگ برای تجارت به شهرهای دور و نزدیک سفر میکرد و به محض اینکه از سفرهای طولانی خودش برمیگشت فوری به کنار رودخونهٔ والخف میرفت اون همیشه برای روتونه عزیزش هدیه کچی که کوچیکی می میآورد و اون رو به میون انواج میانداخت روزها و ماهها و سالها گذشت و سادکو هنوز ازدواج نکرده. اون مدام در سفر بود و با خرید فروش و تجارت ثروتمندتر و ثروتمندتر میشد و تمام دختران سرزمین روسیه آرزو داشتند همسر سادکو افسانه ما بشن ولی سادکو به ازدواج حتی فکر هم نمیکرد. روزی از روزها سادکو داشت در داخل کشتی بزرگی دورتر از سرزمین روسیه کشیرانی میکرد. کشتی چند روز در حرکت بود سادکو روی عرشه نشسته بود سنتور میزد و درباره زیبایی زیبایه های روتونی ولخوف شعر میکن که یه دفعه کشتی متوقف شد و در میون انباج لرزید به طوری که انگار دست قدرتمندی اونو مکم نگه داشته بود ملوانان فریاد زدند کشتی به گل نشست کشتی به گل نشست کابیتان بونها گفت که عمق آب رو اندازه بگیرن عمق آب در قسمت عقب کشتی 136 متر بود کاپیتان گفت مگه اینکه که سخری سوزنی شکل از وسط دریا بیرون زده باشه ملوانان گفتند حتما جادویی در کاره و کاپیتان گفت بادوانها رو بکشید زود باشید بادوانها کشیده شد اما کشتی همچنان در دریا به خودش می لرزید و حرکت نمی کرد. ملوان پیری گفت سادکو تو با ساز و آواز دریا رو جادو کردی تو جادوگری و باید از این کشتی بیرون بری و قبل از اینکه که سادکو بتونه حرفی بزنه یا از خودش دفاع کنه ملوانان اونو به دریا انداختند. انواج سادکوی افثانهی ما رو در میون گرفتن اون مثل ریگی که در داخل سخری افتاده باشه پایین و پایین تر رفت آب اول آبی بود بعد سبز شد و همینطور که اون در آب فرو میرفت، رفت ماهی های عجیبی در اطراف می میکردند. و بالاخره سادکو به کف دریا رسید و این موقع بود که با خودش گفت oh, خدای من غور قدیمی فرمون روای من من چیز میچو فراموش کرده بودم اونجا کف دریا قصری به چشم می که از چوب سبز ساخته شده بود سادکو در مقابل دو ماهی بزرگ دید که از دروازه های قصر محافظت می کردن. سادکو ساتکو از میون ماهی ها گذشت و وارد قصر فرمانروای دریاخورد شد بعد از ورود ساتکو به قصر فرمانروای دریاها به انتظار نشسته بود اون تاجی از طلا بر داشت و موهای یابی رنگش در اطراف شناور بودند و بدنش از پولک پوشیده شده بود فرمانروای دریاها با دیدن ساتکو گفت سادکو تو اونچرو که دریا به عنوان پاداش به داد گرفتی اما خیلی طول کشید تا برای آواز خوندن به قصر سبز بیای. سال هاست که من اینجا منتظرت هستم. سادکو گفت، فرمان روای دریاها لطفاً منو ببخشید. من، من متاسفم که قولم رو فراموش کردم. ولی الان در خدمت شما هستم. فرمان روای دریاها گفت، حالا بخون، آواز بخون و سازت رو صدکو به صدا در بیار سدکو سنتور زد و آواز خوند اون درباره زیبایی های روتونی کوچک ولخف آواز خوند و تمام شب با چیر دستی سنتور زد فرمون روای دریاها با حیجان گفت آه این موسیقی منو به وجت میاره خیلی زیبا و دلنشینه نشینه به نواز باز هم بنواز تمام شب بنواز بعد بلند شد و مثل درخت تناوری از میون دروازه ها گذشت و گفت: تمام ماهی ها با این موسیقی زیبا دمهاشون رو به حرکت در بیارن و در شادی ما شریک بشن خیلی زیباست واقعا دلنشینه وقتی که فرمان روای دریاها در ته دریایی ایستاده بود بسیار بزرگ و غول پیکرتر از موقعی بود که داخل قصر سبزشی ایستاده بود. اون هر لحظه بلند و بلندتر میشد و مثل کوه سر به فلک کشیده به نظر می رسید. از هیجان و شادی در کف دریا شروع کرد به تکون دادن دوم و بالهاش. اونقدر این کار رو تکرار کردن که خسته شد و به قصر سبزش برگشت. از مقابل دو ماهی بزرگ محافظ گذشت. به جایی رسید که ساتکو همچنان در حال نواختن سنتور. فرمانروای دریاها به قصر سبزش که برگشت به سادکو گفت آه سادکو تو منو خیلی شاد کردی صدای سنتورت منو به وجد آورد من میخوام پاداشی به تو بدم سادکو گفت ولی قربان من قبلا پاداشم رو از شما گرفتم گرفتن فرمانروای دریاها خندید و گفت ها ها ها ها ها ها. نه نه این پاداش چیز دیگه ایه و بعد اضافه کرد من سی دختر دارم تو یکی از اونها رو به عنوان همسر انتخاب کن و شاهزاده دریاها شو صادکو گفت من بیشتر از همه دختران روتخونی کوچیک خودم رو دوست دارم و به ازدواج فکر می کنم اون به من آرامش میده در همین بین سی دختر فرمانروای دریاها وارد قصر شدند اونها همه زیبا و باوقار بودن بیست نه دختر از مقابل سادکو عبور کردند و سادکو به سنتورش دست میکشید و به رودخونی کوچیکش فکر میکرد نوبت به دختر سیوم که رسید یه دفعه سادکو فریاد زد این تنها دختریه که به زیبایی رودخونی کوچیک منه دختر آروم خندید فرمان روا گفت سادکو اسم رودخونی ای که اینقدر به اون دل چیه صدکو جواب داد. قربان روتخونی کوچیک من ولخفه که نزدیک کلبم قرار داره. دختر کوچیک شما به زیبایی اونه. به زیبایی روتخونی ولخفه من. من با کمال میل با من ازدواج میکنم. البته اگه دختر کوچیک شما هم مایل باشه با من ازدواج کنه. فرمون روا کمی فکر کرد و گفت: چیز عجیبیه خیلی عجیب اسم کوچکترین دختر من هم ولخوف سادکو با تعجب گفت این این قیل ممکنه و بعد گردن بندی رو به گردن دختر دید که یک روز خودش عنوان هدیه به روتونه محبوبش ولخوف انداخته بود در این موقع فرمانروای دریاها گفت من و دخترم با این ازدواج موافقیم و بعد دختر به سادکو گفت همراه من بیا و اون رو به قصر خودش برد و صندوخچه رو نشونش داد صندوقچه پر بود از دستبندها، انگشترها گوشوارها و تمام هدیه هایی که سادکو به رودخونه ولخوف عنوان هدیه انداخته سادکو با خوشحالی گفت رودخونه کوچیک من در تمام دنیا هیچ دختری به جستو به زیبایی رودخونهٔ که من نیست خلاصه اونا با هم ازدواج کردند و فرمانروای دریا در جشن ازدواجشون به قطری خندید و خندید و خندید که قصر لرزید و ماهیها از هر طرف شناور شدند بعد از جشن سادکو و عروس با هم به قصر عروس رفتند عروس گفت سادکو آیا تو منو فراموش نمی کنی گاهی برام سنتور میزنی و آواز می میخونی؟ سادکو گفت زیبای من هیچ وقت فراموشت نمی کنم و تمام روز برات سنتور میزنم و آواز میخونم دختر گفت امیدوارم همینطور باشه که میگی و دختر به خواب عمیقی فرو رفت و سادکو سنتورش رو به صدا در آورد و برای همسرش ولخوف زیبا نواخت و نواختا خسته شد و در کنار سنتورش به خواب رفت. سادکو احساس سرما کرد. از خواب بیدار شد و دید که همسر شاهزاده ولخوف مثل یه تکه یخ در ماه ژانویه سرد سرد بود. ماه می درخشی. سادکو در حالی که سنتورش در دستش بود و یه پاش داخل روتونه یک کوچکه بلخوف کنار رودخونه دراز کشیده بود بعد از اون بعضیها گفتند گفتن که سادکو به شهر رفته و تا موقع مرگ همونجا به تنهایی زندگی کرده بعضیام گفتند گفتن که سادکو سنتورش رو برداشته و تا وسط روتونه یک شنا کرده و اونجا به دنبال شاهزاده یک خودش یه بار دیگه زیر آب رفته اونا میگن اون شاهزاده رو پیدا کرده به هنوز در قصر سبز کف دریا زندگی میکنه اما وقتی که طوفان بزرگی به پا میشه شما میفهمید که سادکو سنتور میزنه و آواز میکنه و فرمون روای دریاها در اون پایین زیگن باج خروشان از شادی و شعف دمش رو تکون میده و از صدای سنتور سادکو به وجد مید افسانهٔ سادکو رو از گنجینه ادبیات شفاهی و امیانهٔ مردمان سرزمین روسیه براتون نقل کردم برگرفته از کتاب های مردم روسیه اثر آرتور رنسوم با ترجمه ی از ظهرهٔ گرامی امین حتما میدونید که در دوران باستان چند گروه مأمور نشر و رواج های سودمند برای حفظ تعادل روانی شخص با مردم و جامعه بودن. هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت صالح پور ویرا ستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صداوردار اچبر اکبر نگاییم کننده زهرا عبدالله زاده احسانی دیگر بدرود